از آغاز به جانب تازه می زن سرنیزهای سنگی را نگاه کرد تاریخ آن را و گفت این نیزه را نگاه کن از ده هزار سال پیش مانده است ای مردم بدانید که من این دختر را از این قبیله بسیار بسیار خواستم و این نیزه را به خاطر آن تراشیدم از سنگ سنگ تا اگر کسی باشد که بخواهد این دختر را از این قبیله از چنگ من درآورد، قلبش را با این نیزه که آن را تیز تیز تراشیدم، سوراخ کنم و بشکافم من در بسیار خواستن چیزی نورا بنیاد نهادم من می توانستم پدر این دختر را از پای درآورم و مادرش را و برادرش را و آنگاه دختر را با خود به قبیله خود ببرم تا برای من فرزند و فرزند و فرزند بیاورد اما من دلم نمیخواهد این دختر را گریان ببینم و گریان به کلبه خیش ببرم پس درماندگی کردم و درماندگی مرا به فرمانبری از او واداشت و این به فرمان اوست که چنین ای را تراشیدم اینک من شکلی نو از خواستن و بسیار خواستن را به قبیله شما آوردم که زمین و آسمان را دیگر خواهد کرد. آه، بیا این جام را نگاه کن. هنوز بعد از هشت هزار سال از آن اطر عشق برمی مرد خودت را پیر کردی بس که با این جام کلنجار رفتی. این همه کوبیدن، تراشیدن، نقش انداختن به خاطر دختری که خوب روی خوشاندام هم نیست؟ بس کن مرد، بس کن، کمر دوتا شدت دیگر راست نخواهد شد درباره خوب روی دخترک بهتر از دهانت را ببندی تا سرت را از دست ندهی اما در باب کاری که بر این جام می کنم، راستش میترسم که باز هم نپسندد باز هم رضا ندهد که آن را بالای سرش بگذارد و در آن شربتی به شیرینی و تلخی دوست داشتن بنوشد نترس مرد نترس خواستن با بزدلی کنار نمی آید برو جام را بی‌پروا به دستش بده و از او بخواه که با تو زندگی کند اگر نپذیرد با خواننده‌ای چون تو اگر نخواهد که زندگی کند تنها چرایش در این است که شایسته تو نیست رهایش کن رها کن اندیشه رها کردنش را که این سخن را اگر باز بگویی سرت را از دست می دهی این ستون اما علا رغم عظمتش هیچ نشانی از عشق را در خود ندارد این ستونیست از قصر سلاتین بردگان آن را بردوش کشیده اند شلاخ خوران و برپا داشده اند شلاخ خوران آری بگو که از اینجا بیرونش ببرند ببرند و در تخت جمشید باز بکارندش جایی که ستونهای ستمگری سلاطین در آنجا بسیار برافراشته شده است و فریاد دردمندی کشندگان و تراشندگان آن ستونهای سنگی عظیم بسیار به آسمان رسیده است اما بانوی من در میان ایشان نیز فرهادها بوده است شک نباید کرد این گل را نگاه کن که چقدر ظریف است شش هزار سال پیش مگر همچو چیزی ممکن است خدای من چرا ممکن نیست بانوی من این گل سینه نازکترین و زیباترین گل سینه است که من در همگی زندگیم هم ساختم به آن که روزی آن را به تو پیشکش کش کنم و از تو بخواهم که از کلبه پدر خیش درایی و به کلبه من بیایی و برای من فرزندانی خوب روی چون خیشتن بیاوری تشنگی آب چرخشی ابدی گیل مرد این چرخ چاه را نگاه کن چه هنگامی است به راستی روزی به دیدن یک قلعه قدیمی با چاهی بسیار قدیمی خواهیم رفت در قلعه های قدیمی اطر جاری عشق را هنوز هم می شود بوید در قلعه های قدیمی صدای شره عشق را می شود شنید. در غع قدیمی عشق را در عبور اسیریش چون شبی همیشگی می تواندید. این فقط بستگی به نگاه تو دارد به اینکه چگونه ببویی بشنوی لمس کنی. تو آهسته بازویم را می فشاری. نگاه کن این سوار را نگاه کن؟ عجب جلال و جبروتی دارد عجب کند و سنگین و شکوهمند میآید خاموش بانو میآید به طرف ما اما ما را نمیبیند نگاهش به لبه چاه است لبه چاه کنار چرخ دخترک زیبای قدیمی با دلوهایش ایستاده است با صورتی گلانداخته زیر لب میگویم دخترک باید آزری باشد عجب گونه های گلنداخته ای دارد اصل میگوید شرم گونه هایش را این گونه کرده است مرد را نگاه کن که به اون نزدیک می شود کوهیست انگار بر اسبی اسطورینهاده مرد به لب چاه دیواره دار میرسد به دخترک که همچون گلبرگ گل محمدی است یا نسترن رسیده نگاه میکند و نگاه میکند دخترک انگار بی خیال دلوی را به چاه میاندازد ریسمان را میتاباند صبر میکند دلو را با آب زلال بالا میکشد مرد هنوز نگاه می میکند دخترک گل بگون انداخته آذری باز هم سر بر نمی دارد حس کافی است مرد عاشق است دخترک هم ممکن است باشد اما نشان نمیدهد که همین مرد را میخواهد. تو چطور توانستی به چنین حسی برسی نگاه کن مرد با تمامی یال و کوپالش در مقابل دختر گلبهگون انداخته چیزی نیست مستاصل است و منتظر مرد متین و بزرگوار میگوید، تو را از پدرت طلب کردم سلام سردار من دیگری را می‌خواهم طلبت را پس بخواه سردار بزرگ ممکن نیست هست سردار. اینکه من دیگری را بخواهم تو مرا بخواهی و کسی دیگر تو را بخواهد همیشه ممکن بوده است. عشق میتواند به شکل یک حلقه زنجیر درآید. یک سرش اینجا لب چاه سر دیگرش در ازل عجب دانشمندان را میماند و شیرخارگان را هنوز کودکی را پشت سر نگذاشته است. گذاشته تو نمی بینی. شاید. عادت نکردم که جز تو را درست ببینم و تو را درست میبینم اما به عادت سردار بزرگ همچنان ایستاده و غمزده می نگرد. دو دلو دخترک پر می شود. سردار از اسب فرود می آید و می خواهد که ها را بردارد. دخترک می گوید مدیونم نکن سردار. سردار آرام و مهربان پرسید کیست؟ کیست آن کس که تو او را می خواهی؟ یک سپاهی ساده دل روستایی سردار بزرگ پای بر زمین کوبید و فریاد کشید این غیر ممکن است اصل خندید و گفت ممکن است ممکن است سردار شکوه مند کم عقلی است، در خطه عشق غیر ممکن وجود ندارد برویم برویم گیل مرد گفت خب این داستان را چه کنم؟ اصل خندان جواب داد همه جای قلعه های قدیمی پر از قصه است کم نخواهی آورد سردار گریان فریاد زد سرباز روستایی ساده دلی خواهم شد کافی نیست خودم را خواهم کشت کافیست کاملا کافی آنجا را نگاه کن آن زن و مرد پیر را که جلوی خانشان نشستند ببین تکیه داده به هم و ساره انگار. لاقل شهست سال در کنار هم بودند. بی مرافعه؟ چرا بی مرافع؟ آن مرد کویری یادت هست؟ دو کوزه بی جان را هم اگر یک عمر کنار هم بگذاری گاهی سرهایشان به هم میخورد و درد میگیرد. مهمین است که هیچ سری نشکند و لپر نشود. هیچ دلی. او گفت سر بس است. برویم. خسته شدم ذهنم خسته شد الباغی بماند برای هفتههای بعد